بلاخره به شهر گرگان رسیدیم خسته نشدی نه اتفاقا از مناظر زیبای اطراف جاده لذت بردم چقدر استانهای مازندران و گلستان سرسبز هستند بله این استانها با استان تهران خیلی فرق دارند شود گفت این منطقه یکی از سرسبزترین قسمتهای ایران است برعکس تهران که هوای خشک دارد اینجا هوا مرتوب است بله به خاطر این این استانها به دریای خزر نزدیک هستند ظاهرا گرگان شهر بزرگی است. امروز در اینجا میمانیم نه در شهر نمیمانیم بعد از ظهر با صادق به پارک گلستان میرویم پارک گلستان کجاست؟ این پارک در مسیر جاده گرگان به مشهد قرار دارد مطمئنم که از تفری در آنجا لذت میبریم من عاشق طبیعت هستم مخصوصاً چنین مناظر زیبایی وقتی از مسافران که از این جاده عبور می کنند، شب در پارک گلستان اقامت می کند. پس ما هم با خودمان چادر و کمی وسایل ضروری برداریم تا شب در آنجا بمانیم